ظلفت هزار دل به یکی تار مو ببست راه هزار چار گرب از چهار سو ببست تا آشغان به بوی نسیمش دهند جان بکشود نافی و در آرزو ببست شیدا از آن شدم که نگارم چون ماه نو عبرون و مود و جلوگری کرد و رو ببست تا غیب چند رنگ میان در پیال ریخ این نقش ها که چه خوش در کدو کدوبه بست یارب چه غمزه کرد سراخی که خونه قم با نعره های غلغلشن در گلوبه بست مطرب چه پرده ساخت که در پرده سما بر اهل وجد و حال دره هایهو ببست هران که عشق نورزید و وز خواست احرام توفه کعبه دل بیوزو ببرست